بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كَسٌه هي سن وَهُوَ وهو جماد الواسع أَجْنَاسَ الْبَدَائِعِ البدايع بِحِكْمَتِهِ قناب لَا الصنائع لا تخفى عليه ولا تضيع عنده الودائع جازي كل ثان ورا الشكل قان وراحم كل ضار ومنزل المنافع وال كتاب الجامع به نور وهو و هو ولد سامع وللکربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة رتقام فلا اله غير ولا شيء يعدله وليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير اللهم اني ارغب انج و اشهد بر لك مقرب بانك ربي و مردي مرديب ابتدا قبل أن أكون شيئاً مذكوراً وخلقتني من التراب ثم أسكنتني الأصلاب آمناً لريب المنون واختلاف الدهور والسنين فلم أزل ضاعناً من صلب إلى رحم في تقادم من الأيام الماضية والقرون الخالية لم تخرجني لرافتك بي ولطفك لي وإحسانك إليه في دولة ائمة الكوف الّذين نقضوا عهدك و كذبوا رسولك لَكنَّك أخرجتني للذين سبق لي من الهدام الّذي له يسر وفيها أنشأتني ومن قبل ذلك رأفت بي بجميل صنعك وسواب غن فابتدعت خَلْقِي من مني يمنى فِي ظُلُمَاتٍ ظلمات بين لحم و لم تشهدني خلقي ولم تجعل شيئا من أمري ثم للذي سبق لي من الهدى إلى وحفظتني في المهد طفلا صبيا ورزقتني من الغذاء لبنا مريا وعطفت علي قلوب الحضاظين وكفلتني الأمهات الرواحين وكلا تني من طوارق الجان، وسلّمتني من الزيادة والنقصان، فتعال يا رحيم يا رحمن، حتى إذا استهلت ناطقا بالكلام. اتمامت علي سبب غل انعام و تنی زائدن في تنى زايدا كل عام حتى اذا اكتملت فطرتي واعتدلت مرتي او جبت علي حجتك بان الهمتني معرفتك وروعتني بعجائب حكمتك وأيقظتني لما ذرأت في سمائك وأرضك من بداع خلقك و نبهتنی وذكرك و ذکرک و وعبادتك وفهمتني طاعتک و ما جاءت بهی رسولک و لي تقبل مرضاتک و علي في جميع ذلك بعونك و ثم اذ خلقتني من خير الثراء لم ترض لي يا الهي نعمة دون أخرى من از بهتر همه نعمتها رو برام فراهم کردی و رزقتنی من انواع المعاش و صنوف الرياش بمن کل عظیم الاعظم علی و احسان کل قدیم علی حتیا اذا اتممت علی جمعان نعم وصرفت عني كلن غام لم يمنع ك جهلي وجرأتي عليك نعمت تو من تمام وكمال ددي بلاها رو ازم کردی گستاخی و نادانی من مانع این همه نعمت نشد اناندلتنی اامما و قربنی ال وفقنی مایزلفنی لدن چه خداایی فند او تو جای عجبنی؟ وَإِن سَأَلْتُكَ أَعْطَيْتَنِي و این اطاعتو که امروز روز شکر، شکر شكري این همه نعمت و این شکرتو که زدتنی شکر کنی ما رو به عرف رسون كل ذلك اکمال لان عمک علی و احسان که الهی سبحانك من مبدع مجيد حميد و مجید تقدس اسماك و عظمة آلاك فاين نعمك يا الهي أحصي عددا و ذكرا، أم أي عطاياك أقوم بها شكرا، وهي يا رب اكثر أكثر من أي يحصيها العادون أو يبلغ علم بها الحافظون ثم ما صرفت و درأت عني اللهم من الضر والضرا اكثر مما ظهر لي من العافيه والسرر وانا يا اشهد يا الهي بحقيقه ايماني وعقد عزمات یقینیم اینجا ارباب من و شما با تک تک اعزاب و جوارش به وحدانیت خدا شهادت میده و خالص صریح توحیدی حتما به معانی توجه میکنید و باطن مکنون ضمير و علائقه جاری نور بسریم و اثاریر صفحه جبینی با چروک ها و چین های روی پیشانیم شهادت به وحدانیت خدا میدم و خرق مسار به نفسی با های راه نفسم و خضاری فمارن عرنینی و مسار به سماخ سمعیم بما ذمت و اطبقت علیه شفتای با لبم شهادت به بهدانیت خدا میدم و حرکات لفظ لسانیم همه این اعزاب و جواره روز داره و من ردشم همه تو نهل اشید نمیخوام دعا رو کنم معناه ای فز دست بر و مغزه حنک فمی و فکی و منابت ومساق و مساق متعمی و مشربی و حمالت ام رأسی و بلو عفارق عنقی یا صاحب الزمان زمان و مشتمل علیه تامور و صدری ما همش میگیم یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین این شاله بیاد و حمایل حبل و تینی و حجاب قلبي و حواشي كبدي کبدی و ما حبته و حقاق و مفاق سلیم سادات منو ببخشن دیگه نمیتونم نگم دست خودم نیست اینقدر این استخونه هاشو زیر صبح اصباح یه کاری کردن خواهر دست برد زیر بدن <تصفح> اخدیسینه یه حزینو نگاه کرد Yeah. <laughs> صدا زد تو حسین منی آیا تو فرزند مادر منی این سینه ای که بوسگاه پیغمبر بود و قبض و عواملی و اطراف و اناملی و لحمی و دمی و شعری و بشری و عصبی وقصبي وعظامي ومخي وعروغي وجميع جبارحي ومن تسج على ذلك أيام ارضاعي وما أقلت الأرض من و نومی و یقضتی و سکونی و حرکات رکوعی و سجودی قربون رکوع سجودت برام یا ابا حرکات رکوعی و سجودی ان لو حاولتوم و اجتهدتوم دل اعصار و الاحقاب لو عمرتو هام ان او ادی شکر و حدتم من ان عمک مستتعتو ذالک همارم بگم شکر دری دونه نعمت تو نمیتونم بجایارم، إلا بمن علي. به من کلمو جبعلی بهی شکر که ابدان جدیدا و ثنا انتظار فن عتیدا، أجل ولو حرس تو آن و لعات دون من آنامک، النحسي یا مدا ان عام صفهی و ما ف ماحسرنا و حیات وانت المخبر في كتابك ناتك وانباء الصادق وانت عدو نعمه الله لا تحصوها صدق كتابك اللهم وإنباؤك وبلغت أنبیاؤك ورسلك ما أنزلت عليهم من وحيك وشرعت لهم وبهم من دينك غير أني یا الهیم اشهد بجهدی و جدیم ومبلغ طاعتي ومسعی واقول مؤمن موقنا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا فيكون موروثا ولم يكن له شريك في ملكه، فيضار أده في <تصفيق> ما ابتدى ولا ولي يوم من الذل فيرفده في ما سنا. فسبحانه سبحان لو كان فيه ما ألحت إلا الله لا فسادا وتفطرتا سبحان الله الواحد الأحد السماح الذي لم يلد ولم يولد ولم يك الله كفوان أحد الحمد لله حمد يعادل حمد ملاكات المقربين وانبياء المرسلين فسال الله على خيارتين محمد خاتم نبيين والاهل الطيبين الطاهرين المخلصين وسلل يا ان جاء عباره الدعاء بجاي رسل دیدن حضرت شروع کرد به گریه کردن عشقهای مباز دیدگان مبارک سرازیر شد یا با عبدالله آقا جان اینجا بلند بلند گریه کردی و دست تو به آسمان بلند کردیم ایستاده دعا رو خوندی خیلی از مردم ایستاده از اول دعا پیره مردم. کمرش خمیده است اما استاد دعا رو به احترام سید و شهدام آقا جان گریه کردی نال زدی ما با گریه شما گریه کنیم اللهم مجعلنی اخشاک کنی عراق اگه حسین اینجوری بگه من من چی دارم در خونه خدا بگم و اسعد نیب ولا تشق نیب مصیتک و لی فی قضائک و بارک في قدرك حتی لا احب تعجيل ما اخرت ولا تأخیر ما عجلت خدایا من راضیه به قضا و قدرت قرار بده نخوام اون چیزی که تو به تأخیر می اندازی من به تعجیل بندازم نخوام اونی که تو به تأخیر میان دزی من ممانعت کنم. اللهم جعل غناي في نفسي و اليقين في قلبي بل اخلاص في عملي والنور في چی ها اینجوری طلب می امروز و البصیرت فی دینیم و متعنی به جوارحیم بجعل سمعی و بصری و سرنی من ظلمني و في فی هثاری و معاربی و اقر رب چشم ما رو به دیدار منتقم خونشون روشن بفرمان اللهم مکشف کربتی این همه گرفدار این همه مریضدار همه ای ایران اسلامی دارن مستقیم حرم کریمه اهل بیتو میبینن و دلشونو گره زدن نه خیلی آگوش کنار این جهان و این دنیا کشورهای مختلف یکی مریض داره یکی حاجت داره اینجا حرم خواهر امام رضا اینجا حرم فاطمه معصومه سلام الله علیه اینجا حرم اهل بیت دست خالی نمیرید روز عرفه امروز بزرگترین گناه ناامیدی در خونه خداست کسی نا نباشه اللهم كشف غربتي واسدر عورتي واغفر لي خطيئتي واخس شيطاني وفكراني واجعل لي يا الهی الدرجه العليا في الاخر رتبال لك الحمد کما خلقتني، فجعلتني سميع و كنت عن القي غنيا رب بما برا شني فعدل شاف تريب رب بما انشاتني فاحسنت صورتي رب بما احسنت الي و في نفسي عافيتني رب بما كللتني و رب بما انعمت علي فهديتني رب بما أوليتني و كل خير اعطایتني رب بما اطعمتني وسقايتني رب بما اغنايتني و اغنايتني رب بما عنتني واعززتني رب بما البستني من سترک صافي ويسرت لي من صنعك الكافي صل على محمد واعني على بوائق دهور وصروف الليالی بل ایام ونجنی من اهوال الدنيا وکربات الاخره وکفنی شر ما یعمل الظالمون في الارض اللهم ما اخاف اف فک فنیم بما احذر فقني وفي نفسي وديني فاحرسني وفي سفري فاحفظني وفي اهلي ومالي فاخلفني وفي ما رزقتني فبارك لي وفي نفسي فذللني وفي فی الناس فعظم نی و من شر الجن والانس فسلمني التماست و به فلا تفضح نی و به سریرتی فلا تخزني گنام رسوان و به عملی فلا تبتلنیم منو به عملم گرفدار نگون و نعم که فلا تسلبنیم منو از نعمتات محروم نگون این یه دونش خیلی عجیبه همه رم ازم میگیری بگیر این آخری و اله غیر که فلا تكلني میخوای رسوام کنی عیبی نداره میخوای گرفتارم کنی عیبی نداره اما منو به غیر خودت واگذار نکن الهی اله من تگلونیم منو میخوای به کی واگذار کنی الا قریبن فیقتعونیم به نزدیکترینم که با من دشمن میشم اما الا بعیدن فیت جه اونی که نزدیکترین نزدیک منم وقتی آخرین سنگ لهدو میزارن روایت میگه زیر سنگ لهدین داری صدای پاش شونو میشنوی دارن ازت دور میشن هی داد میزنی منو تنها نزارید میترسم یه نفر کنار قبر من ببونه اون شب منو میخوای به کیوا گذار کنیم دلم میخواد یه جمله حالا که شهید گمنامه هست حالا که به اینجا رسیدم حیف یادم افتاد بابا هممون شب اول قبر نیاز به مونس داریم بگم یه جمله مادر ما زهرا هم به علی وسیعت کرد علی جان شبی که منو تو قبر گذاشتی منو تنها نزاد بابا فاطمه است کو سر پیغمبره. صدا زد علی بالا سر قبرم قرآن بخون صدا بشنوم بشنم منو تنها نزار علی أم إلى بعيداً فيتجهمني أم إلى المستضعفين اللي منو به کیوا گذار میکنی، بر به هر کیوا گذارم کنیم منو خارم میکنه ذلیلم زلیلم می و انت ربیم و ملیک و امریم اشکو علیک قربتی و بعدداریم حسین داره میگه خدایا من و وسط این بیابان غریب گذاشته بهوانی علام من ملک دو امریم الهی فلا تحلل علي غضبك فإن لم تكن غضبت عليا فلا و بالی سواک به من غذب نکن با من غر نکن من طاقت خشم تو رو ندارم <تصفيق> سبحانه که غیر انعافیته که اوسع علیم فاسهلو که نور وجهك الذي اشرقت له الارض والسماوات وكشفت به الظلمات وصلح به امر الابلین والآخرین اللا تو میتنی على غذا به تنزل زلبی سخطلا اصلا امروز اومدم داد بزنم لل اتوب لل اتوب غلط کردم منو ببخش حتی طرض قبل دا انقدر میگم تا از اسمن راضی باشی لا اله الا انت رب البلد الحرام والمشعر الحرام والبيت العتيق الذي احللته البركه وجعلته للناس امنا یا من عفا عن عظیم ذنوب بحلم یا من اسبغن نعماء بفضل یا من اعطل جزیل بكرم یا عدتی في شدتی یا صاحبي. في وحدتي يا غياثي في كربتي يا ولي في نعمتي يا إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ورب جبرائيل ومكائيل وإسرافيل ورب محمد خاتم النبین وآله المنتجبين ومنزل و منزل التورات والفرقان ومنزل و الزبور و الفرقان و صاد و طاهم و القرآن الحكيم أنت كه حين تعين المذاهب في ساعتها وتضيق بي الأرض برحبها ولولا رحمتك لكنت من الهالكين وانت مقيل عثرتي ولولا سترك ايا لكنت من المفضوحين وانت ميدي بالنصر على اعدائي ولولا نصرك اياي من المغلوبين. يا من خصنا نفس او به يا من جالت له الملوك نير فهم من ستواته‌ی خائفون یعلم خائنَتِ الأَيُن و الصدور و ما تأتي به الأزمنة والدُهور يا من لا يعلم كيف هو إلا هو. يا من لا يعلم ما هو illa يا من لا يعلمه الا الله يا من كبس الارض على الماء وسد الهواء اب السماوات يا من له اكرم الاسماء يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا يا مقيض ر كبل يوسف في البلد القفر من الجب وجاعله بعد العبودية على يعقوب بعد أن ای خدایی که یوسفو به پدر برگردوندی بعد از این که دو چشمش نابینا شد و دلش پر از غم شد یوسف مارم به ما برگردون یوسف زهرارم به ما برسون خیلی ها ندید زیر خاک رفتن یا کاش فضر ولبلوان ایوب و ممسک یده ای ابراهیم عن ذبح حب بعد كبر نه و فناه عمره یا من استجاب لزكريا فوهب له هبله یحیا خیلی آد اولات میخان خیلی آد روز آرفا همین خدا روز آرفاست شیرخاره سید و شهدان خدا هرکی آرزوی اولاد سالم و سالح داره به آرزوش برسان ولم یدعه فرد وحیدا یا من اخرجه یونوسه من بطن الحوت یا من فلق البحر لبنی اسرائیل فانجاهم و جعل فرعون و جنوده من المغرقین خدا خبر نابودی آل سعود و آل یهود به همه عالم برسان خدا تکفیری ها و داعشی ها رو تو فتنه های خودشون غرق کن یا من ارسل مبشرات بين يدي رحمت يا من لم يا اجل على من عصاه من خلقه يا من استن قد من بعد طول الجحود وقد غدا في نعمتي ياكلون رزق ويعبدون غيرا وقد هااد دو و نادو و و <تصفيق> يا الله يا الله يا بديع يا بديع لا ندلك يا دائما لا نفادلك يا حي حينا حينا لا حي يا محي الموت يا من هو قائم على كل نفس سن بما كسبت یا من قلله شكري فلم يحرمني به به به بعضه خطيئتي فلم يفضحني وراني على المعاصي فلم يشهرني نابروم بردي نروسوام كردي نه نعمت تو ازم دریخ کردی خدا یا من حفظنی فی سغری یا من رزقنی فی کبری یا من ایادیه عندي لا تحصابا و نعمه لا تجازا یا من عارضنی بالخير والإحسان بهعارض تووب و والعاسیان ای خدایی که با خیر و خوبی با من برخورد کردیم ولی من با بدی و نافرمانی جواب تو دادم يا من هداني للايمان من قبل ان اعرف شکر الامتنان يا من دعوته مريضان فشفاني معنا واضحه خيلي قشنگ دارن عشق ميريزن و عريان فكساني وجائعان فاشبعنی وعطشان آیان فاروانی بذليل فاعزني و جاهلا فعرفني و فكثرني و فردني و سرنیم و فلم يسلبني و امسکتو عن جمیع ذالکم فابتدانی اومدم بگم فلك الحمد و شکر من اقال عثرت یه عمر داری لغزش های منو من نادیده میگیری و نفس کربتی و عجاب دعوتی و ستر عمورتی و وبلغني طلبتي ونصرني على عدوي وإن أعد نعمك ومنناك وكرائمة منحك لا أحصيها يا مولايا <عش> انت لذی من انتا انتا لذی انعمتا بذار چند تاشو بشمارم تو چه خدایی هستی تو با من چه کردی من اینجوری آشقت شدم أنت الذي احسنت، آنت الذي اجملت، آنت الذي أفضلت، آنت الذي اكملت، آنت الذي رزقت، آنت الذي وف فقط من کجا عرف کجا تو روزیم کردی بیام یه ساعت گریه کنم و التماس کنم تو منو موفق کردیم، انت الذي اعطایت، انت الذي اغنايت، انت الذي اغنايت، هم منو بینی آزم کردیم، هم منو سرعت مندم کردیم، اغنايت، یعنی بینی آزم کردی، یعنی منو سرعت اتمندم کردی چه ثروتی یه جمله خدایا تو اینو بهم دادی تو زهرا و علی رو تو دلم گذاشتی انت الذي اويت انت الذي كفيت انت الذي هديت انت الذي عصمت انت الذي سترت انت الذي غفرت میخوام داد بزنم همه بفهمن من شخدای درم انت اله دی اغلتا انت اله دی مکنتا انت اله دی عزازتا انت اله دی عانتا انت اله دی انت اله دی یا تا، انت الذي نصرت. اونایی که مریض دارن کنار بستر مریضشون نشستن، انت الذي شفايت. خدایا منم پر از مریضی رویم. بعضی ها مریضی جسمی دارن بعضی مثل من قلب مریض دارن انتا الذي کار خودت خدا انتا الذي اکرمتا تباركت و فلك فلک الحم دلم میخواست نفس داشتم تا صبح میگفتم انت لذی بلک الحمد دائم بلکه شکر واسبا ابدا ثم انا یا الہی حالا نوبت <تصفح> یه دیگه این جاش باید سرمو بذارم پایین روم نمیشه داد بزنم انا يا امام صادق فرمود روز عرف مثل فرزنده از مادر متولد میشی خوشمال اونه که تو همین انالذی ها استغفار و توبه و همین الان بار خودتو میبندیا انالذی انایا الهی المعترف و به ظنوبیم فقفر حالی بزا همه بدونن من چی کارم الذي اصع تو الذي اخطع تو الذي همم تو بغض نمیذاره من راحت بخونم شما راحت ناله بزن انا الذي جهلتم انا الذي غفلتم انالذی سهوتم انالذی اعتمدتم همه بدبختی های من از اون جایی شروع شد که به غیر تو اعتماد کردم انالذی تعمدتو وای بر من خاک بر زرم من تو گناه عمد داشتم عمدن گناه کردم ایناللذی وعد تو آیونی ای که عرفه پارسال قول دادن وعده دادن به خدا و زیر قولشون زدن و ایناللذی اخلف تو شب قدر قول دادم الان شرمندم الذي نکست تو الذي اقرر تو انا الذي عرفت بنعمتك علي وعندي واعبو بالذنوب تغفرها لي يا من لا تذره ذنوب عباده وهو الغني عن طاعتهم والموفق من عمل صالحا منهم بمعونته ورحمته فلك الحمد إلهي وسيدي إلهي أمرتني فأسيتك ونهيتني فارتكبت نهيك فأصبحت الذنب براءة لي فأتذن و لا ذا قوت فانتصر فبعیش این استقبلو که یا مولاي امروز با چه روی باد حرف بزنم بسمعیم با کدوم عزو جوار هم ام به بسریم ام به لسانی. من به هیچ کدوم از اینا رحم نکردم همش آلودست است به یدیم ام به, یدی، به رجلیم كلها کلها نعمک عندیم و به کلها عصیت کی؟ یا مولای هر چی بهم به نعمت دادی با نعمتات گناه کردم. يا مولاي فلك الحجت و السبيل يا من سترني من الآباء والامهات اي يزجروني و من العشائر والاخوان اي عير وَمِنَ السَّلَاطِينَ أَنْ يُعَاقِبُونِي وَلَوِ اطَّلَعُوا يَا مَوْلَايِ عَلَى مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنِّي اِذَا مَا أَنْظَرُونِي وَلَرْفَظُونِي فها فها انا يا اين يداك يا سيدي خاضع ذليل حثير حغير خار درمانده و كوچك و ذليل و مدام لا براءه تنفعتذر ولا قوه فان تصير ولا حجه ولا حجه فاحت أجبها ولا قائل لم اجترح ولم أعمل سوء وما عسى الجحوم. ولو جحد تو يا مولا ينفعني و وان ذلك وجوارحي كلها شهادت علي بما قد عملت وعلمت يقينا غير في شك انك سائل من عظائم الامور وانك الحكم العدل الذي لا تجور وعدلك مهلكی ومن كل عدلك مهربي فإن تعذبني يا الهي، فبظنوبی بعد حجت که علای و انت عفو عنی فب حلم و جود و کرامت حالا هر نال داره صداش و روز عرفه خرج کنه لا اله الا اینو همه با من بگن سبحانه که کنتم نبضا حالا همه لا اله ما ماشاء الله سبحانکه انیم لا اله سبحانکه انیم کنتو من المبحدین لا اله سبحانك انی کنتو من ال لا اله سبحانك انی كنت منال وجليل لا اله سبحانك اني كنت من الرجين لا اله كنت من الراغبين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من المحللين لا اله جوانم صدا تو برسون سبحانك اني كنت من السائلين لا اله آجد دارا و حاجت مندا سبحانك يا اني كنت من المسبحين لا اله الا انت كنت من المكبرين لا اله الا انت سبحانك ربى رب و آبى الاولين. اللهم هذا ثنائى عليك ممجدا و اخلاصی موحدا وإقراري و با اقراری با آلاء أني و این لم أحصها لکثت رتها و وتقادمها و إلى حادث ما لم تزل تتعهدني به معها منذ خلقتني وبرأتني من أل العمر من الإغناء من الفقر وكشف الضر وتسبيب اليسر ودفع العسر جلخرب والعافيه في البدن والسلامه في الدين ولو رفدني على قدر ذكرنا متك جميع العالمين من الاولين والواخر ما قدرته ولاهم على ذلك تقدست و تعالیت من رب کریم عظیم رحیم لا تحصا آلاؤک و لا يبلغ ثناؤک ولا لا تکافی نعماؤک صل على محمد وآل محمد وأتمم علينا نعمك وأسعدنا بطاعتك سبحانك لا إله إلا اللهم انك تجيب المضطر وتكشف السوء وتغير المكروب وتشف السقيم وتغني الفقير وتجبر الكثير وترحم السقيم وتعين الكبير وليس دونك ظهير ولا فوقك قدير وأنت العلي الكبير يا مطلق المكبل الأسير یا رازق طفل الصغیر طفل الصغیر خدا رحمت کنه همه شهدا رو یاد یه دو بیتی از شهید غلام علی رجبی افتادم این شهید مداح روح شاد بشه هیچ‌وقت دو بیتو یادم نمیره همه شهدا فیض ببرن آخ مادرها گریه کنن با این دو بیت یا راز قد طفل سغیر الان هر کی گرفتاری داره مد نظر بگیره از زبان رباب شهید رجبی دو تا بیتی داره آخ هر چقد چنگ بزنی شیر نمیاد؟ نمیدونم گریه هاتون الان دلتونو کجا میبره؟ علی ایلا ای پسرم. مادرها بیرون اگه صدا ناله دارن هرچقدر چنگ بزنی شیر نمیاد دیگه بعد از امو آب گیر نمیاد پسرم علی از اونیکه اونی که بچه ها رو آب میداده. حالا دست داشت توی صحرا افتاده آخ عجب اسمی شد عجب نامی شد میخواستم آخر دعا ببرمت کنار الغمه عیبی نداره حالا که با علی اصغر رفتیم کنار الغمه چند صفحه بیشتر نمونده نمیشه عصر عرفه بیاد. ما به سینمون نزنیم و نخونیم سقای دشت بالا. معلوم همه منتظر بودن ها کلا سخای دشت کربلا دستش شده از تن جدا هر کی صدا رو میشنوه اونایی که تو خونه ها سقای دشت کربلا شده از تن جدا همون روزه هر سال و هر کی ناله داره فقط قبلش بگم برا این روزه ابی عبدالله کمرش خمیده شد <تصفيق> نوشتن رسید کنار الغمه بان ال انکسار. همه دیدن رنگ از چهره حسن پری. وای حسن ها قیرتی بلدی ناله بزنی الحمدلله یه جوری گریه کنیم آخه کنار القمه همه هل هل کردن صادات منو ببخشن حضرت آیت الله سعیدی منو ببخشید روزه عباس روزه عمو جانمونه دیگه حرف یه جایی رفت نمیشه آرام گرفت آخ پشده حسین ابن علی تا شده و ویلا و نمیدونم طاقتشو داری یا نه پشت حسین ابن علی تا شده و و داد بزن صدام من نشنوی پای عدوب خیمه ها و پای عدوب خیمه ها شده تا دیدن حسین دست به کمر گره زینب دست رو سر گذار و اول کاری که کردن اهل کنایه اهل روزه اید اول کاری که بعد عباس کردن رفتن گوشواره ها رو در وردن معجراشون گره محکم زدن های حسین هرچی نفس داریا یا <تصفيق> راز قدفل زخیر یا یا عصمت الخائف المستجیر گریه نکن عزیزه که قلب من میگیره رنگی به روخ نداری مادر برات بمیر کجاست اموت ابلفز اون ساقی دلاور بگید یه فکری کنه برا علی اصغر آخ، حیفه این دوتاشم بشنو جانم به لب رسیده احل ناله باشی رو هوا نالت تکسیر میشه همه ناله میزنن آخ جانم به لب رسیده چرا؟ تیر از کمان پریده بروی دست بابا جلوی او دریده آخ بمیرم دلم داره میسوزه بگید یا ایوهن یه بچه شیش ماهه تیرسه شو به آ آیا حسین بگو تا صدات بگیره روز عرفه حسین یا اسمت الخائف المستجیر یا من لا شریک لهم ولا وزیر صلق علی محمد و آل محمد و اطنی فی هاده العشیه دیگه صفحات آخر رو با عشق مرور کنیم افضل ما اعطای از اینجا به بعد دعام دیگه میریم به سمت شب عید قربان خوشبحال حال اونایی که کم کم این نشاط قلبی رو پیدا کردن آره گریه برا حسین به ما نشاط و فرح قلبی میده شب ایده حضرت فرمود گریه کن جد ما یک نشات و فرحی خدا بهش میده که تا قیامت همراهش هست این گریه با همه گریه فرق داره گریه برا حسین افسردگی نمیاره قصه نمیاره شما بعد این دعای عرفه همین که نیم ساعت دیگه داری از حرم میری بیرون سبک شدی زلال شدی خوشحالی شادمانی انگار نه انگار دو ساعت داری گریه میکنی امام صادق فرمود این فرح تا قیامت تا کنار حوز کوسر با شما هست یه جوری از تنمون بیرون نمیره این ادامه روایت منو خیلی تکون میده اون روزی که یوم بلست سرائره اون روزی که همه خوافن همه گریانن همه میترسن همه مترسن هیرن همه سرگردانن اما گریه کنه حسین خوشحال اونجاست که امیرالمؤمنین خودش میاد وسط قیامت آی اونایی که گریه برا حسین کردید؟ علی میگه علیه بیاید به طرف خودم بح بح بح بح. این عیدی ما باشه یا صاحب الزمان زمان عیدی شب عید ما همین بس ماست آقا جان و اعطنی فی هاده العشیه چی میخوایم شب؟ افضل ما اعطایت و انلت احد من عبادك من نعمت طولی ها و آلائن تو جد و بلیت تصرف ها و کربت تکشف ها و دعوت تسمع و حسنت تتقبل و سیعت تتغمد اینکه لطیفن به ما تشا و خبیر و علا كل شیع قدیم اللهم انك اقرب من دعیم وأسرع من اجاب و, و من عفا و اوسع و من اطاب و اسمع و من سئل یاب رحمان الدنیا والآخر و ليس لیس که مثل مسئول ولا سوا که Surah <laughs> دعوت کن فاجبت نی و سألت کن فاعطیت نی و رغبت الیک فرحمت نی و, و الله فسل على محمد عبدك و رسولك و طیبین الطاهرین اجمعین و تمم لنام نعمائک و هنئنا عطاک و کتبنا لک شاکرین و لآلائک ذاکرین آمین. Amin. <Sanly> Amin. <Sanly> Rabb alamin. اللهم يا من ملك فقدر وقدر فقهر وعصير فستر وستغفر فغفر يا قايت الطالبين الراغبين ومنتهى عمل الراجين يا من أحاط بكل شيء علما ووسع المستقيلين رأفة ورحمة وحلما اللهم إننا نتوجه إليك في هذه العشية التي شرفتها وعظم به محمد النبی کم ورسولک رسولک و من خلقک و امینکم على وحیک البشیر النذیر السراج المنیر الَّذی اَنْعَمْ على المسلمين وجعلته رحمة للعالمين اللهم فصل على محمد وآل محمد كما محمد أهل لذلك منك يا عظيم فصل عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ الْمُنْتَجَبِينَ طَيِّبِينَ الطاهرین اجمعین وتغمدنا بِعَفْوِ عنا ایدی ما همین باشم گزشته ما و گناهان ما رو بپوشون فا الیکم عجت الاسوات بسنوف اللغات لنا اللهم في هاد العشی نصيبا من كل خیر از هر خیری هست نصیب ما قرار بده <وعا> نصیبم من كل خیر تقسمه بین عبادت به همه خوبات هرچی دادیم به مام یه خیری بدم و نور تهدی به و رحمت تنشرها و برکت تنزلها و تجللها و رزق تب تبسطه یا ارحمه رحمین اللهم اقلبنا فی هادل وقت همه دعات این چند سطر تو پایین نیار منجحین مفلحین مبرورین غانمین ولا تجعلنا من القان ما را از ناامیدا قرار نده به اون عباسی که ناامید شد به اون سقای بی دستی که دید مشک آبشو زدن ای التماس گرد ای مشک نریز آب رویم بر مده تو آرزویم به اون ناامیدی که کسی رو ناامید نمی کنه خدا ما رو ناامید نكن ولا تخل من رحمتك اک. الله اکبر این صفحت آخر این فرازهای آخر همه حرف منو تو رو حسین داره میزنه خدایا امروز ما رو دست خالی از رحمتت قرار نده ولا تحرم نام مان و من فضلك از اون چه فضلت ما امیدواریم ما رو محروم نکن ولا تجعلنا من رحمت که محرومین ولا لفضل ما عملو! من عطائک قانطین ولا تردن خابین ما رو ناخم بر نگردون هر کی ما رو بیرون ببینه میگه چه خبر عرفه حرم حضرت معصومه بگیم جاتون خالی امام زمان دست هممونو گرفت انشاءالله عظیم ببد کاری کنیم حضرت بهمون نگاه کنه یه لبخند رضایت یه لبخند رضایت عیدی شب عید قربان باشه و لامن باب کمت رودین یا جود ع جوودین و اکرعملکررمین ال علایی که عقببل ناموقین والبع کل حرام آم می نقاصدین فاعننااعلا مناسه نام خیلی یا پارسال این فراز و خوندنم دیگه تو مناب شهادت رسیدن و رفد معلوم نیست سال دیگه عرفه رو ببینیم و اکمل لنا حجنا بعفانا وعافنا فقد مددنا اليك ايدينا فهي بذلت الاعتراف موسوما اللهم فاعتنا في هذه العشيه ما سألناك وَكْفِنَا مَسْتَكْفَيْنَاكِ فَلَا كَافِيَ لَنَا سِوَاكِ وَلَا رَبَّ لَنَا غَيْرُكِ نَافِذٌ فِي نَا حُکْمُكَ مُحِيطٌ بِنَا عِلْمُكِ عَدْلٌ فِي اقضلن الخیر و اجعلنا من اهل الخیر اللهم اوجب لنا به جود کم عظیم الاجر و الذخر الزخر و دوام اليسر و لنا ذنوبنا ناجم معين ولا تهلكنا مع الحالكين ولا تصرف عنا رافتك ورحمهك چند بار این عباراتو به بگو هیفه حالا که حالت حال مناجات يا ارحم الراحمين یا صدا تو برسون ازا در و دیوار این هرم صدا تو بشنوه یا ارحم یا امام صادق فرمود قیامت وقتی سفره رحمت خدا پهن میشه حتی یطمع ابلیس فی رحمته حتی ابلیسم به رحمت خدا طمع میکنه ابلیسم میاد تو صف میاد از رحمت خدا بهرهی بگیره حالا منو تو روز عرفه داریم میگیم یا ارهم ار راه چرا دست خالی مگه نفر مود و ابتقو الوسیله میخوام دست تو بیاری بالا آخر عرفه ی اسمی رو ببرم مطمئنم اگه تا حالا دلی نلرزیده باشه الان میلرزه آخ بیار دست تو بالا به اون دستی که مدینه دیگه بالا نیومه سادات ببخشن با اسم مادرتون صفر جمع بشه دیگه به اون دستی که کمر بند علی رو گرف همه مدینه طرف زهرا طرف آخ به اون دستی که نامرد انقدر با غلاف شمشیر ز. آخ بمیرم علی شب قسل دادن دستش به بازوی فاطمه که خوب دیدن اون علی که اسبر و صابرینه اون علی که به همه گفته آروم گریه کنید دیدن علی سر به دیوار گذار بلند بلند داره داد میزنه به فاطمه هرچی نفس داری من هرچی نفس دارم میگم تو هم جواب منو بده به فاطمه الهی اله. يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنام في هذا الوقت ممن سألك فأعطيتم وشكرك فزدتم متوب <تصفيق> اليك فقبلت ثم وتناصلا اليك من ذنوبك كلها فغفرته الله يا الجلال والاكرام <تصفيق> اللهم قناب و وقبل نام و تذر و انا پاکمون کن مرد سر قولی که دادیم ثابت قدم قرار بده گریه ما و زاری ما رو بپذیر یا خیر من سوئل و یا ارحم من استرحم یا من لا یخفا عليه اغماض الجفون ولا لا حظ العيون بلا ما استقر في المكنون ولا من طوت عليه مضمرات القلوب ألا كل ذلك قد أحصاه علمك ووسعه حلمك سبحانك وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا تسبح لك السماوات السبع والأرضون ومن في هن من شيء الا يسبح بحمدك فلك الحمد والمجد وعلو الجد يا ذا الجلال والإكرام والفضل والإنعام والأياد الجسام وأنت الجواد الكريم الرؤوف الرحيم اللهم أوسع علي من رزقك الحلال وعافني في بدني وديني وآمن خوفي و اعتق من النار اللهم لا تمکربی خدایا منو جریمه نکن با بلای خودت بلا تستدرجنی بلا تخدعنی و عني شرف سقت الجن ولنسه. حالا سر و بالا بگیرید به سمت آسمان اینجا ارباب ما انقدر گریه کرد نمیدونم اینجوری بلند بلند گریه کرد جلو علی اکبرش بود یا جلو عباسش بود یا جلو زینبش بود نمیدونم اما دیگه اینجوری گریه نکرد تا کربلا سفره داره جمع میشه ها دیگه اینجوری حسین گریه نکد تا کجا تا اون لحظه ای که دید علی داره دست و پا میزنه ایتدازت ولدی علی یا اسمع سامعی Heavenly, Amen again. Ya, asma. A. بیرون تو همه همه یا ابسران ناظرین و یا اسرحل ای صدا تو رها کن یا ارحمان داره جواب تو میده ها سل على محمد و آل محمد از سادت المیان. امین اللهم حاجه التي ان اعطاينيها لم يضرني ما منعت نی و این منعت نیها لم یانفانی ما عطایت ازت ازد میخوام حاجتی که اگه به من اتاق کنیم برام زرداری نداشته باشم اگه منو ازش من کنیم نبودش خدایا یا برام منفعت بچه از آلو کفکا که رقبتی من النار لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير يا رب يا رب يا رب Ya Rabbi Ya Rabbi